رام این دیشب تلفن کردم در خانه نبودی کجا بودی دیشب به خانه دوستم مهدی رفتم تو مهدی را می شناسی؟ مهدی؟ نه نمی شناسم مهدی کشتیگیر است پس فردا برای مسابقه به ترکیه می رود. پس برای خداحافظی به خانه مهدی رفتی بله برای خداحافظی رفتم تو دیشب کجا بودی؟ در خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتی خوش گذشت؟ بله بد نبود مادرم هم آمد او چای و میوه آورد پارک شلوغ بود؟ بله مثل همیشه پارک شلوغ بود شبهای تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است